اوزو بالله السمیر العلیم، من الشیطان اللین الرجیم اسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین از والسلام و و علی نبی نابعاد تاهیرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر عرض میکنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت برخوردارید و انشاءالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور هستید سال نور هم خدمت شما مجدد تبریک از میکنم انشاءالله سال موفقیت، سلامت، توفیق و رحمت الهی برای همه شما باشد ما در بحث خودمون تا اون جایی که من در ذهن دارم که الان و نگاه دارم به کتاب میکنم بیت پونزده رو از قصیده دوم متنبی برای شما بیان کردم و الان باید بیت 16 هم رو بخوانم اگر نینه همین طور دیگه باید خب ما چه کرد ما در در بیت موزده هم دیگه میشون عنوان کرد و ما تلبت که غلط هم کتاب نوشته و ما تلبت زرغل عصنت غیرهو ولکن قسطنطین ولکن قسطنطینه کان لهون فدا زرق لعصنته یعنی علعصنتو از زرق از نوع اضافه صفت به موصوفه یعنی نیزه های فام یعنی نیزه که حسابی سیغل شده و سخته و ما طلبت زرق لعصنته غیره هم. میگه نیزه های فام ایفام طلب نکرده بود غیر از دمتریوس رو اون پادشاه یونان را ما لشکر سیف الدوله فقط نشانه کرده بودند که دمتریوس پادشاه یونان رو بزنند میگه خب چطور شد اون تونست فرار کنه میگه ولیکن ولی قستانتین کنستانتین که پسر این پادشاه یونان بود دمتریوس بود کاناله الفدا برای پدر فدا شد یعنی او آمد خودش رو فدایی این کرد و این تونست فرار کنه یعنی چی؟ یعنی لشگر سیفت دوله مشغوله به لشکر این پسر کنستانتین شدن با او جنگیدن و این فرصت داد که پدر به تواند فرار کنه ولیکن نه کنستانتین کانله فدا خب سرلیزه های نقریف کسی غیر از دیمتریوس رو ناتانویده بود و ولی کنستانتین فدایی او کردید حالا بریم سر بیت بعدی خب بعد از اینکه این کنستانتین مجروح شد و از میدان جنگ فرار کرد و پسر خودش رو و لشکریان رو به دست سیف ودول سپورت چیکار کرد میگه رفت در روم اونجا لباس راهب رو پوشید دیگه توبه کرد از اینکه به جنگ بیاد قرا گفت غلط میکنم دیگه قامو بذارم تو میدان جنگ جوری شد که لباس راهبان رو پوشید و در دیر و صومعه وزلاد گزید و گوشه نشینی کرد تو اینجا نگاه کنید فاست اینجا اسبهه به معنی ساره است یعنی گردید فاست به یجتاب المصو یجتابو فعل زمیر فایلش از مفعولش این جمله خبر اسبه است زمیر داخل یجتاب و زمیر داخل اسبهه میخوره به پادشاه روم او فا اسب و یجتاب المسوح میگه پس گردید که میپوشید پس او میپوشید لباس لباسهای راهبان را مخافتن از ترس جنگ این له. از ترس جنگ دیگه از ترس جنگ اصلا دیگه زره بتن نکرد رف لباس راهب ها رو پوشید و در صوم و, و محل روحبانان موشنشینی رو پیشه خودش کرد مخاف میگه وقت کان این بابا است با هست و قد کان یچتاب و دلاس المسرده و حالا که او میپوشید قبلا از دلاس زره های شده و زره های بافته شده یا از حلقه های آهن می قبلا زره پوش بود جنگ بود زره به داشت اما الان بعد از شکست از سیفالدوله چنین شد فأس و هیجتا و موزو همخافتا وبقد کان یجتا بود بناسن مسردا الموسو جمع مسح ال جمع المسح لباس های پشمینه که این راهبها ها می پوشیدند. دلاس زره نرم و برراغ زره‌ای اگه ریز باف باشه حلقه‌هاش ریز باشه و این به هم بافته شده باشه این نوع زره رو بهش میگن دلاس مسرد یعنی بافته شده اصلا سردده یعنی بافت مشخص و هم که یعنی می پوشید اجتاب و و اجتیابن یعنی پوشید پس این آقای دمتریوس از ترس و حراس جنگ با لباس راهبان ملبس میشد یا لباس می پوشید حالان که در صورتی که پیش از اون زره های و بافت شده از حلقه های آهنی نمی پوشی. آه این بیت کنایه از اینه که این دمتریوس از ترس سیف و دوله جنگ و بوسید گذاشت کنار و مثل راهبها که اصلا با جنگ کاری ندارن گوش نشین هستن در دیر و خودشون لفت در دیر و سامد. سومه خودش در دیر و ای خزید و دیگه اصلا با جنگ فکرم نمیکرد خوب اونچه که از این بیت باید میفهمیدیم فهمیدیم و چیز خاصی هم ندم این بیت بعدی باز همین معنا رو داره تکرار میکنه و یمشی این به جای اون یچتابو یعنی فعص به یمشی و یمشی به هل اکازو فدهیر تا و ما کانه یرزا مشی اشقره اجرده و کاز عصای این کاردینال ها و اسقف های مسیحی اگه دیده باشید یه اسای دستشون میگیرن نسبتاً بلند سرش هم یا حالت قلمبه داره این عصا اینطوری میزنن زمین و راه میرن این اصای نوعی اصای مذهبی و خدمته که در واقع یه چوبه به است که این ها البته کاری شده سرش هم یک منبتکاری شده و قلمبه هست این نوع اسایش میگن او، اوکاس اسای عادی نیست اسای این اسقف کاردینالها کاردینال ها مسیحی که اگه توی فیلم ها دیده باشید دا اوکاز اسای اسقفها و کاردینال هاست نزده مسیحی ها. این لغت رو داشته باشید دیرم که میدونید دیگه دیر و صحبه مال روحبانانه عشقر اسب عصف سرخمو اسبی که سرخمو باشه یعنی بور باشه که بهترین نوع اسبه یعنی عشقر اسبی که موکوتا هم باشه مو کوتاه باشه اونم بهش میگن اشقر که هر دو جزه بهترین صفت اسبه اجرد ولی تنوکموز پس اشقر رو بگیم اسب بور سرخ اجرد رو بگیم اسبی که موی کم داره چون از اجرد و اشقر صفت مشوباست اینها دوتا صفتن موصوفشون افتاده اینطوری بوده مشی فرسن اشقر عجره اسمی که سرخ و مو کوتاه است پس اشقر و اجرد صفت یه موصوفی بودن فرس اون افتاده و اینها جاش نشستند، یعنی سرخ مو و کوتاه موی یعنی اسب زرخمون و اسب کوتاه همون که معنا کنیم؟ میگه و یمشی یعنی و اسب ها یمشی بهل اکازون بهل خوره به همون پادشاه روم پادشاه روم را راه میبرد برد ازا اکاز یعنی اکازوهو یعنی ازایش عصای او او را راه می برد. یعنی در دیل رفته بود کمرش شکسته بود افسورده نانان جوری که باید با اصا راه می رفت خب میگه اصا او را راه می برد مشا یعنی حرکت کرد مشا به یعنی راه برد مشا یعنی رفت مشا به یعنی راه برد. حالا مشا بهی اوکاز ال و اللا غ از مزافانهره یه یعنی اکاز یعنی اعای او او رو, می او رو راه می برد در اون دیری که توش بود تا در حالی که توبه می کرده خر کردن دفنچنگ خر کرد. سا او رو راه می در اون دیر و صه توبه کنند این بابا و با با است و ما کانای یرزا و حالا که راضی نمیشد در گذشته مشی رفتن اسب سرخ موی رو یعنی در گذشته راضی نمیشد به حرکت کردن و رفتن اسب درجه یکی که سرخ مو و موکوتاه گفت این چیه اینا راه نمیره که میگه گذشته حتی اسبی که بهترین نوع اسب بود اشقر و اجرد اینو راضی نمیشود به راه رفدنش گفت سرعت ن اینرا نمیتونه بره حالا که آمد به جنگ سیف و دوله و شکست خورد از شکستی که به او رسیده جوری شده که الان عسا داره اونو راه میبره در دیر توبه کنند یعنی نمیتونه پا از پا برداره درست شد عسای اسقوهار او رو توبه کنان در دیر به راه میبرد در صورتی که قبل از این از راه رفتن و حرکت کردن اسبان سرخ رو اسبان بر و مکوتاخ نیز راضی نبود دنبال همون مدهسه قبل یعنی اینقدر کنایی از اینه که اینقدر ظرف و ناتوانی پیدا کرده که جز با تکیه و اصال نمیتونه اونم تو در راه بره افسرده سرده کامل شده و قبل از این یک دلاوری بود برای خودش جوری که حتی اسب سرخمو و مو کوتاه رو هم راضی به راه رفتنش نه اگر بلاغت خونده باشید تو این یمشی بهل اوکاز مجاز عقلی بود مجاز عقلی بود یعنی به جای اینکه بگه او عصا گرفته بود به دست و با عصا راه میرفت آه چون اون عصا رو میگیره دستشان مبالغه کرده میگه چی میگه عصا او رو راه میبرد. الان الاکاز فاعل یمشیه عصا او رو راه میبرد. در صورت که اگر میخواست مجاز نگه حقیقت بگه باید جای بهی و الاوکاز رو عوض میکن گفت یمشی این دمتریوس بل اوکاز یعنی این آهای دمتریوس به کمک عصا داره راه میره عصا گرفته دستش و اصا زنان داره میره ولی الان داره میگه عصا او رو راه میبره خود این مبالغه بیش از حد. دیگه مشکلی باز ما اینجا نداریم و مبحث معلوم بیت بعد رو نگاه کنید و ما کانه یرزا مشیش قرار اجردا کانه و یرزا توش دوتا زمیری که هست مثل زمیر بیهی میخوره به دمتریوس اون مشیه هم مفعول یعرساست عشقر مزافان الیه مشیه اجردم صفت عشقره درسته این دوتا اصلش گفتم صفت یک موصوف محذوفی بوده که حذف شده و این صفت جاش نشسته خب بیت بعدو ببینید و ما ناب حتی قادر الکر رو وجهه جریحه و خلا جفنه النقعه ارمده و خلا و ما نابد حتی قادر الکر رو وجهه جریحه و ما خلا جفنه و ارمدا و شعر راحته فقط لغات رو که گرفتید ترکیب رو هم من یه مقداری گفتم میبینید شعر رو خودتونم راحت میتونید هم معنا کنید هم بفر مده سیف و دلار رو داریم دیگه نقه لغت یاد بگیرید لغات شو نقه میدون جنگ گرد و غبار میدون جنگ از کجا پیدا میشه؟ از این از و آدم که پیاده نظامی که تو میدون جنگ حرکت میکنند گرد و قبار بپا میشه اون گرد و قبار رو بهش میگن نقل پس نقل عبارت است از گرد و قبار میدان جنگ ارمد صفت و مشبه است یعنی کسی که چشم درد داره ارمد چشم درد داره رجلون ارمد من مردی که چشمش درد دوست شو اصلا رمد یعنی چشم درد مرزی که آدم در چشم داشته باشه چشمش درمز بشه آب ریزش کنه چینا؟ میگن لهو رمد بهی رمد این آدم چشم درد کر در مقابل فر فر یعنی فرار کردن کل یعنی وجود کردن میگن میدون جنگ کر و فر داره یعنی یه جاهایی باید حمله کنیم یه جایی باید عقق بشینی پس کرد حمله کردنه میگن هیدر کرار یعنی هیدری که امیرون و که پشت سر هم بگیر حجوم میکرده به لشکر دشمنم پس کرر یعنی حجوم کرد کرار یعنی حجوم کننده بسیار میگه و ما نابه اصلا نابه هم نابه ینوب و یعنی رجع نابه جنوب، یعنی رجع اصلا ای یعنی رجوع به خدا نابه فایلش میخوره به آبون دیمتریوس خب و ما ناب، و او از میدان جنگ سیف و دوله بر نگشت گفتیم که او زخمی شد و فرار کرد دیگه میگه وما نابر و او از میدان جنگ برنگشت حتی مگر اینکه که قادر الکر رو وجه ها قادر الکر یعنی الکر یعنی الهجوم منظور هجوم لشکر سیفردول است یعنی کر یعنی کر جعیش سیف دوله تا اینکه باقی گذاشت قادرم حجوم لشگر صیف دوله صورت او را جری هم جری یعنی مجروح فعیل به معنا مفعول مثل قتیل به معنای مقتول حال است از برای وجخه میگه او از میدون جنگ بر نگشت مگر در حالی که باقی گذاشته بود هجوم به سیف و صورتش را مجروب یعنی با صورت زخمی صورتش جراعه برد و خلا خلا هست به قادر است جفنهو انباو ارمدا و باقی گذاشته بود خلا یا خلی و آزاد ساخته بود پلک او را گرد و غبار میدان جنگ در حالی که ارمد بود یعنی پلکش بگید چشورت گرفته بود یعنی از گرد و غبار میدان جنگ چشورت گرفته بود گرد و میدان جنگ پلک او را دردناک کرده بود و حجوم لشکر صورت او را زخمی کرده بود و او با صورت زخمی و چشم معیوب از میدان جنگ برگشت این دور نبود که از میدان جنگ بتونه سالم فرار کنه با بدبختی از اونجا فرار کرد. این دمتریوس از میدان جنگ باز نگشت مگر اینکه یورش دشگر سیف دوله صورتش رو مجروح کرده بود و قبار میدان جنگ چشمش رو دردمند کرده چشمش رو آزرده. با چشم بیمار و صورت زخمی از میدان جنگ بردشد یعنی این آقای دمتریوس از شدت درد چشم و زخمی که بر صورتش وارد شده بود اونم از لشکر سیف و دوله آه از این درد چشم و زخم صورت برگشت از میدان جنگ جنگ او رو زخمی کرده بود دیگه تابش رو گرفت و او فراد کرد و خلا از وجه قادره جفنهو مفعول خلا انقاو فاعل خلا ارمده حال حال برای جفن جفن یعنی پلک اینجا منظور یعنی چشم پلکش رو دردمند کرده بود یعنی چشمش رو به درد آورده بود خب و ما نابد حتی قادر در الکر و الکر رو گفتیم الفلام آغاز از مزافنیده یعنی کر جش منظور جش سیفرده بسته وجه یعنی او یعنی صورت دمتریوس و جری و خلا جفنهو او انعقاو یعنی میدان جنگ ارمداد او بیان معلوم شد و راحت د. فلو کان یونجی من علیم ترح هوان ترح هبت مسنا و موحضا خیلی قشنگ بود گفتش که این آقا بعد از اینکه فرار کرد رفت چیکار کرد گفت رفت توی دیر و سومه لباس راهبها رو پوشید توبه کنان عصا به دست گرفت راه میرفت با کنار خم و میگفت غلط کردن و دیگه اصلا جنگ فکرم نمیکن میگه ببین بری تو دیر هر کجا بری هر کاری بکنی از دست صیف و نمیتونی فرار کنی اگر قرار بود لباس پشمین پوشیدن و تو دیر قایم شدن و عذاب دست گرفتن و اونجا راه رفتن کسی را نجات میداد تمام پادشاهانی که شکست دست خود دو خوردن همه قبل از تو این کار میکردن تو این بهدی میگاه کا کان یونجی من علی یونجی یعنی چی نجات میداد طرخ خوب ترحب یعنی راهب نمایی کردن ترحبه یعنی خودشو راهب نشون داد راهب یعنی چی؟ یعنی لباس پشمینه بپوشه توی دیر و سومه وسیحی ها را برد دست بگیره اینو میگن ترحبه کشیش نمایی کرده راهب نمایی کرد. میگه فلوکانه با لو میگه میگه اگر به فرض نجات میداد از علی علی منظور علی همدان سیفت است اگر از دست علی نجات میداد ترهو کشیش نمایی کردند، و راهب نمایی کردن می شود. و نجات میداد کسی را از دست سیفت دونه ترخبتل املاک همه پادشاهان راهب می شدن مصنا و موحد دوتا دوتا و یکی یکی مصنا یعنی دوتا دوتا موحد یعنی یکی یکی این دوتا حال است از برای املاد یعنی پادشاه ها اگه دوتا بقل هم بودن دوتاشون راهب شدن اگه یکی بود تنها بود اون راهب شد چه کنار هم چه با هم چه بی هم این پادشاهان همه راهب می شدن. از ترس سیف و دوله. و نجات پیدا میکردن میگه اگر میشد که با راهب شدن از دست سیف و نجات پیدا کرد همه پادشاهان چه با هم چه بی هم میامدن و راهب میشدن برست شد. اگر راهب شدنها کسی را از دست سیف الدوله نجات میداد پادشاهان دیگر هم با هم دو به دو یا بی هم تک تک راهب میشدن از دست سیف و جواب لوه کانه یونجی کانه فیل شد دوه اون ترحب فائل یونجی است یه زمیرش توی کانه مستطره یعنی کانه و یونجی از نظر ادبی نزا کردن در سر ترخ عمل و دادیم به یونجی شده فائد یونجی برای کانه زمیر توش مستطر کردیم که اش بیرد باب تناسل. و منظور از علی اینجا علی ابن همدان آقای سیف و است. مصناب و موحد هم که گفتم هر دو حالند از برای املاک املاک جمع ملک یعنی پادشاه. خب این هم خیلی ساده بود میگه دل خوش نباش خوش خیال نباش که حالا رفتی لباس مسیحه ها رو پوشیدی و توی دیر میچرخی الان به گونه شده که میتونی از دست سیف و فرار کنی نه همچین چیزی نیست و کل امره و کل امره به شرق و القرب بعدهو او ابدو لهو صوبن من الشعر از تو بیت بالا گفت اگر لباس پشمینه راهب ها میتونه سادم نجات بده همه پادشاهان میامدن و از ترس سیف و دوله راهب میشدن اینجونشون رو نجات بده اینجا هم همون مبحث رو داره دنبال میکنه میگه و کل امره و هر شخصی اون قادشوها رو گفت که همشون لباس راه بارو حالا میگه همه کسانی که مخالف سیف و از نشگریان دشمن اونا هم هر کدوم برای خودشون لباس پشمیله آماده میکردن که تا سرکلی سیف و دوله پیدا بشه اون لباس رو بپوشن و از دست سیف و دوله رها بشن و کلوم به و هر شخصی فه شرق و در شرق و بعد بعدهو بعد از دمتریوس یو, یو ادو یعنی آماده میکرد لهو برای فرار از سیف و دوله لباسی من از شعر از مو از پشم اصفادا اونم سیاه لباس سیاهی از پشم و مو لباس پشمینه آماده میکرد برا خودش هر کسی اگر لباس راهبان دمتریوس رو نجات میداد همه می میبوشیدن و هر کسی هم در شرق و غرب بعد از دمتریوس یه لباس پشمینه سیاهی برا خودش آماده میکن که هرگاه گاه و دوله سراغش اومد بتونه بگو به این هیله از دست سیف و دوله فرار کن خب. و کل امره انف شرق و الغرب بعدهو یعد له و پس از دمتریوست هر کسی در شرق و غرب برای خود لباس سیاهی مهیا میکرد از مو یعنی موی شتر که این لباس رو تهیه میکردن از موی شتور پشم شتر و لباس پشمینهای بود که توی در میپوشیدن اگر این میشد بله هر کسی این کار رو میکرد یعنی اگر راحف شدن دمتریوس مون از دست صیف و دوله نجات میداد هر کسی از دشمنان سیف دلاری که پیدا می کردی جامعه لباس روحانی می و خودش رو خلاص می که یه لباس روحانی برای خودش آماده می که چیز سختی نبود کل نماین مبتدا یه دلگود خداش. کل نبرد فر شرق و هر انسانی در شرق و غرب بعد از دمتریوس یا اردو لهو آماده می کرد برای خودش به خاطر صیف دل لباسی از مو موی شتر اونم سیاه آ که بیشتر این افراد می پوشیدند آ افراد راهب میگه ما هر کسی برای خودش یک لباسی آماده میکرد که بتونه با این هیله از دستتو در به ولی نتونست این اینطور بشه او نتونست این کار رو و این هم نشد و کل خب این رو هم دیدی. پس این بیت با بیت قبل با هم هستن فلوکانه یونجی من عدیین ترخوبان ترحبت العملاک و من مصنا و موحدا و کل عمره انف شرق والغرب بعده و الغرب بعدهو یا اقدرهو سوبا من الشعر اسفه داره یعنی شعر ناقته موی شطور از موی شطر اون هم سیاه لباس پشمینه درست میکردند، این راهب ها بیپوشیدن میگه همه این مخالفین سیف و این با کل این. یعنی هر کسی منظور هر کسی از مخالفین سیف در شرق و غرب آلم بود بعد از دمتریوس یا دلحور آماده میکرد برا خودش به خاطر سیف دوله. لباسی از جنس مو اونم از رنگ سیاهش بهترینش اصخفها دیدید که لباس سیاه می پوشن ندانم. ولی دیگر الان پشت از موی شتر و اینها نیست میگه اینها چه نیدونی خب تمام شد اگر یادتون باشه اگر یادتون باشه گفتیم این قصیده رو آقای متنبی برای مدح صیف دوله خوند در یک میده قربان درست شد؟ اونم در میدان حلب کلاتو سوریه است در میدان حلب اونم در موقعی که هر دوتاشون روی اسب سوار بوده یعنی خودش روی اسب سوار بود اینو نوشته بود میخوند سیف الدوله رو هم بود برمیه سران لشگر هم در میدان حلب چند بود. گفتیم این قصیده رو اینطوری خوند و پیروزی سیف بعد شاه روم رو اینطور مرد کرد و تبریک کرد حالا اینجا داره به همون اشاره میکنه خوب دقت کنید یادتون باشه که فسیده رو اون موضوع و مطلبش رو از دست ندید هنی اندکل ایدو اللذی انت ایدو و ایدان لمن سما و زه و عبدو یا و عیدا که عید بیشتر رسیده عیدا یعنی اید گرفته عبدو باشه یعنی عبادت کرد یعنی عیدا بیشتره تو اینجا بحث اینه اون لغت درست یعنی اندر کرد عید اید یعنی این عید قربان هنی لکه یعنی گوارا باد بر تو مبارک باشد بر تو این اید. ها مبارک باد بر تو این اید. الگزید. این ایدی که انت ایده تو عید اون هستی. اون اید شده به خاطر اینکه که تو ایدشید. مبارک باد بر تو این عید قربانی که تو خودت عید او هستی تو خودت مبارک او هستی یعنی تو باعث شدی این عید عید بشه ولی تو نبودی کی عید میگرفت عید کجا بود گفت مبارک باد بر تو این عیدی که تو خودت عید اون هستی و ایدون لمن سما و زحا و عیدا و عید است برا هر کسی که سما سما یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفت نام خدا را آورد و زحا و قربانی کرده و عیدا و عید گرفته چون تو عید قربان قربانی میکنن و عید میگن دیگه و برای قربانی کردن بسم الله الرحمن الرحیم میگن و میگه این عید بر تو مبارک باشه عیدی که تو عید اون هستی و عیدی که عید است برای کسی که بسم الله الرحمن الرحیم گفته و قربانی کرده و امروز رو عید قرار داده یعنی تمام هجاج و کسانی که در روز عید قربان قربانی میکنند و اون رو و عید میگیرن این روز عید است ها برای اونها عیدی که در واقع تو عید هستی پس تو عید هستی برای کی برای خود این عید و تو عید هستی برای کی برای کسانی که امروز را عید قربان قرار دادن تو عید هستی هم برای خود امروز عید انته ایدوه و هم تو عید هستی برای تمام کسانی که بگید امروز را عید قرار دادن عید واقعی تو اید الی ایدو لذی انته و انت ایدون اتو جای ایدو هست انت ایدون لمن سما و زها و عیدا تو عید هستی هم برا خود عید هم برا مردمانی که امروز عید رو عید گرفتند نام خدا رو بردند قربانی کردند و امروز رو عید قرار دادند تو عیدی هم برا خود عید هم برای عیدداران داران. اونهایی که امروز رو حید گرفتند درست دیگه خیلی مطلبش ساده است و آمده بیانی کرد. این هنی علکل یعنی هنه علکل ایدو. آه. یعنی این عید بر تو مبارک باشه. عیدی که تو خودت عیدش هستی و تو عید هستی هم برای خود عید و هم برای بگید کسانی که امروز رو گرفت این حنیعن مستره درست شد جایی فعلش نشسته انگاه گفته هنه علکل ایدو مبارک باد بر تو این اید یعنی علی لکم متعلقه به حنیعنه این ال ایدو فاعلشه درست شد یعنی مفعول مطلق یکی از نظر ادبیاتی جای فعلش نشسته این رو هم یاد بگیرید درست شد چگونه روز مفعول مطلق جای فعلش می‌شینیم اینطوری به جایی که بگه حن علکل ایدو حن علکل ایدو گفته حنی علکن ایدو الذی عنت ایدو و ایدون لمن خب این رو هم دیدیم و مطلبش سخت هم بیت بعد رو ببینید پس هنیعا لک العید الذی عنت عیده و عید لمن سما و زحها و عید یدا سما گفتیم سما یسمی یعنی تسمیه یعنی نام خدا رو بردن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن زه ها گفتیم یعنی قربانی کردن و عیده یعنی اید قرار دادن اید گرفتن خب ولا زالت و ولا زالت لعیادو لبسک بعدم تو سلم و و تو اتا مجدد دیگه دعا کرده مثل دعایی که مردم در روز عید برای کسی کنم اولا بدونید حرف لا اگر بر سر فعل مازی بیا دو جوره حرف لا به شکل فارسی که می نویسید روی این لبتاب من به شکل درهم میاد نمی فهمم یه متعادف دارم می بینم و نمیدونم چی نوشتی درست شد اینه که گاهی نمی تونم بعضی از این خطوط رو بخونم چون همه حروفش به هم می ریزه. حالا این رو یادداشت کنید داشته باشید که حرف لا لا اگر با فعل ماضی اگه تکرار بشه حرف نفی تکرار بشه حرف نفی مثل اینکه میگه لا صدق و لا سم تو قرآن لا صدق و لا یعنی چی؟ یعنی این شخص ابو لا صدقه نه تصدیق کرد ایمان رو بود و لا و نه نماز کن عبادت کرد نه زیر بار ایمان رفت نه زیر بار عبادت پس اگه تکرار بشه حرف نبید اگه تکرار نشه تکرار نشه در سر فعل ماضی بیاد تکرار نشه اینجا دعاست اینجا دعاست معلومه؟ مثل که میگیم لا سمح الله لا سمح الله یعنی خدا اجازه ندهاد خدا نکند درست حالا اگر مثلا ما به یکی گفتیم لازل تا سالما لازل تا سالمن سالما یعنی چی؟ یعنی انشالله همیشه سالم باش دوست لازل سالمن سالما حالا اگر مثلا گفتیم لازل مریزن یعنی انشالله همیشه مریض باش درست پس اینو یاد گرفتیم حالا اگر این رو فهمیدید این عبارت رو ببینید و لا زالت اعیادو لبسک ند لا زالت داست اعیاد یعنی تمامی عیدها عید قربان عید قدیر عید فتر میگه الله پیوسته باشد تمامی این عیدها لبسکه لباس تو پوشش تو م? یعنی همه این عیدها انشالله مثل لباس به تن تو بشن یعنی انشالله تو همه عیدها رو ببینی این عیدها پوشش تو بشن دوام کرده دیگه علا عیاد و اسم لازالته لبسکه یعنی لباسکه خبرش اعیاد است این خبر و لازالت اعیاد و لفظه که بعد یعنی بعد از این عید یعنی بعد از این عیدی که امروز عید قربان اعیاد دیگر هم تمامی اعیاد بعد از این همه به تن تو بیان همه پوشش و لباس تو بشن اعیاد همه بر تو مشتمل بشوند بعد از این ای تسلمو مخروقا درست شد و تو عطا توسل تسلمو تو بدهی مخروقا لباسی رو که کهنه شده پاره شده خرق داره و تو آتا و عطا بشی به داده بشه مجددان لباسی نو ها یعنی عید قبلی کهنه شه عید نو بیاد اون عید کهنه رو بدی عید نو بگیری چون گفت عیدها به مثل لباس بتنه تو بعد میگه انشالله تو همه اینها رو بگو هی hey, کهنه کنی بدی و یه لباس نو بگیری درست شو یعنی عیدها همه به تن تو در مثل لباس جونی که اید کهنه رو بدی و اید نو بگیری لباس کهنه رو در بیاری و لباس نو به تو دادش یعنی سخت سال به این سال ها هی hey, اید ها بر تو پوشش تو بشه عید بیاد وجود تو رو بپوشونه. هی hey, این عید قبلی ازش مدتی میگذره کهنه میشه درش میاری عید جدید عید قربان قبلی کهنه شد بذاری کنار عید قربان جدید درست شد. پس دعا کرده در هر او یعنی عیدهای زیادی باشه که تو اونها رو بیایی و ببینی و این عیدها مثل لباس به تن تو بیان هی که نشن بذاری کنار عید جدید اعیاد جمعه عید چیزی نداشت فقط اون لا بود که برسر مازی در و تکرار نشده بود دعا بود یعنی خدا کند که عید ها همچه لباس بر تن تو درآیند بعد از این در حالی که لباسی یعنی ایدی که مثل لباس است و کهنه شده رو تحویل بدی تسلم و عطا شوید به تو داده شود از جانب خداوند نواسی یعنی ایدی مجدد یه عید نو بیا عید قربان قبل تمام شد کهنه شد عید بعد خوب من بیت قشنگی بود دعا کرد دو تا نکته بود خوب و لا زالت لعیادو لبسه که بعدهو یعنی بعد از این عیدی ای ای که امروزه تو سلمان یعنی صوبن مخروغن و تو تا صوبن مجد ندارد میگه فضل یومو فلعیامه مثل و کفلورا کما کنتفیهم اوحدن کان اوحدا خب با من روز عید اونم عید قربان خب خیلی ارزش داره دیگه عید قربان جز عیاد دو دوتا عید هست عید فتر و عید قربان جز اعیاد خیلی بالای مسلمانانه عید قدیر هم هست که اون عید بزرگ بزرگه اما نزد ماشیعیان این عید اما عید قربان و عید فطر همه مسلمین این رو داد میگه که فزلی یوما پس امروز این روز یعنی روز عید قربان بین ایام در بین روزهای دیگه مثل که مثل تو است فلورا در بین همه مردم یعنی عید قربان چقدر ارزش داره؟ بینه هایی درست نسبت به دیروز و امروز آ عید قربان نسبت به روز قبلش روز بعدش نگاه که بکنیم اینه عید قربان یا ارزش یه بینه داره عید فتر. روز عید نسبت به روزهای دیگه بین اخای طرزش میگه مثل تو در بین مردم تو هم شکل مردمی روز عید هم مثل روز دی روز عید مثل امروز مثل روز قبلش ولی ارزش کنست تو هم مثل مردم دیگه هستی چشم داری گوشته اما تو کجا و اونا کچه. پس این روز عید در میان روزهای دیگه همچون تو می باشد در میان بقیه مردم الورا یعنی الناس کما اوهدن کان اوهدا همونطور که تو بین مردم یک تا هستی بی هم تا هستی آه. این عید هم در بین روزهای بیه بیمانند از نظر احمده همانطور که تو در میان مردم یکتایی بیهمتایی امروز هم که روز عید قربانه در بین روزهای دیگه بیهمتاست و خیلی مبحث فاستی نداشت کما هم فی هم یعنی الورا همانطور که تو در بین مردم اوهد یکتایی بیهمتایی کان اون عید هم عید قربانی که امروز توش هستیم او هدا اون هم بی خب خوب معلومشون چیز خاصی توی این بیت نبود و شما دیدید که فزلیوم زا یعنی فازاها فزلیوم ما یعنی فازلیوم پس امروز عید فل ایام در بین بقیه روزها مثل تو مثل تو است فل وران در بین بقیه مردم بعد توضیح میده کما کن تفیه اوهدا همانطور که تو در بین مردم یک تابو و بی هستی کان اوهده امروز هم در بین روزهای دیگه بی همتاست خوب حوال جدو حتی تفزلو لعینو اختها و حتی یکونو لیومو لیومه سیدا خوب دقت کنید حول جد حتی تحفظل الاینو اختها و حتی یسیر الیوم للیوم سید جد یعنی شانس اقبال بخت میگه این شانسه دیگه کنون شانس، این شانسه این بخت، این اقباله که بین همه مردم تو شدی سی این شانس اقباله که بین همه ایام این روز شده روز اید هیچی با این روز از روزهای دیگه مقایسه نمیشه هیچی با بگید سیفت در بین مردم مهایی سنوش فهمیدی چی باید؟ گفت مگه تو مثل بقیه مردمی؟ نه تو کجا بقیه مردم هست؟ مگه امروز مثل بقیه روز نه روز عید قربان کجا بقیه روز هست؟ میگه این شانسیه که خدا داده م? این اقبال بلند توست و اقبال بلند این روزه که این روز شده عید قربان و تو شدید زیفت خوبال جدتون یعنی این وقت و اقبال حتی تفضلل عینو اختها وقت و اقبال تا جایی که چشم نظیری رو بر نظیر دیگری برتری میده یعنی تو رو که نظیر مردم از میگه این اصلا خواهر قیاس است و حتی یسیرن یوم و سیدو و تا جایی که میگردد یک روز مثل امروز سید و سالار برای همه روزهای دیگه میگه این شانس و اقبال است اقبال بلند یعنی این خوشبختی یعنی این اینطوری گفته خوبال نرجت الفلام داره خبر شده یعنی افعاده حس میکنه یعنی اقبال بلند و خوشبختی همین است و دو بس حتی تفصیلت تا جایی که چشم نظیری رو برتر میبیند همه چشم ها تمام چشم ها یه نظیر رو برتر از همه میبینم یه سیف و رو که مثل همه است، اصلا مقایسه با مردم دیگه نمیکنند برتر نیکنن و شانس و اقوال یعنی این که یک روز مثل روز اید و قربان برای همهی روزها میشه سرور و سالا این یه ترجمه یه ترجمه دیگه میخوام بکنم که همین معنا رو میده ولی اون رو نگاه کنید میگه حول جد، اقبال و بخت و شانس این از دو جزین نیست همین حتی تفزلل اینو ها تا جایی که یه چشم بر اخت خودش یه چشم انسان بر چشم دیگر انسان برتری پیدا میکنه یعنی هر که نگاه میکنی دو تا چشم مبرد اینطور معنا کرده. اما یکیش نسبت به اون یکی قویتره نگاه میکنی ظاهرش اما یکیش برتر از اون یکی میگن معمولا چشم راست اینطوریه اون که شاعر متنبی رو مثل ابن جنی شهر کردن و اینها گفتن منظورش اینه دوتا چشم داریم اما یکیش نسبت به اون یکی برتری داره گویا میشه دیگه دوتا مثل هم یکیش بالاتر شانس و حتی یسیر الیوم و الیوم دو روزه امروز با دیروز هیچ فرقی نمیکنه خورشید پنجو مثلا فرض کن 20 دقیقه طلوع از این ور مثلا هفته بعد از ظهر غروب میکنی یکیه روز روزه خرشیرم به خرشی زمینم یه زمینه چرخشم یکی اما امروز با روز دیگه فهم میکنی امروز میشه روز اید و قربان سید نسبت به روز قبل بعد همون معناس ها. یعنی فقط اومده چیکار کرده آه. میگه چی؟ میگه حوال جدو این شانس است که دو تا نظیر داریم یکیش بر اون یکی غلبه دار مثل دو دوتا چشمی که یکیش بر دیگری برتری دار مثل دو تا روزی که یکیش نسبت به دیگری بگی سالار است و سید است اکثرا این معنا رو کردن حوال جد و حتی تفضل علا اینو اختهایی تا جایی که برتری پیدا می کنن. یک چشم بر چشم دیگر بر نظیر خودش و تا جایی که برتری پیدا میکند روزی بر روز دیگر به عنوان سید و سالار رو, رو میش خوب همون معنا رو داره میگه خدا خواسته دیگه دوتا چشم داری یکیش نسبت به اون یکی احساس میکنی که قدرتمندتر دوتا روز داری مردم مثل هم اما یکیش نسبت دومینی که عید شانس یعنی این اقبال یعنی یعنی در واقع اینطوری میشه یه چشم بر نظیر خودش برتری پیدا میکنه و روزی هم برای روز دیگری سید و ساله میشه این همون شانس است و همون اقبال است شانس و اقبال یعنی خب این رو هم فهمیدیم و مطلب ویژهای هم توش نبود حتی تفذله تفزله یعنی برتری مییابد چشمی بر نظیر خودش یعنی چشم دیگر و تا جایی که میشود تو بعضیا داره حتی یسیر تو بعضیا داره حتی یکونه که حتی یکون و علیوم و لیومه سیده حتی تفضلن عقل شده یکونه عقل شده که حتی بعدش در تقدیر گرفته شده حتی تفضلن عقل شده که حتی رو ابتداییه گرفتن که این بهتره پس بهتر همینیه که توی نسخه کتاب شما نعقل شده من به شکل نسخه های مختلفش رو براتون خوندن. ولی بهتر اینه که حتی طب ظلو و حتی یکون نو علیوم و علیوم سنگه یه خلاصه شانس اقبال باعث میشه که دو تا چیزی که عین همان یکیش نسبت به اون یکی برتری پیدا کنه مثل عید که امروز برتری دارد بر فردا یا دیروز اونم برتر. و مثل یه چشم که نسبت به چشم دیگه برتری داره مثل تو که نسبت به دیگران برتری داری جد دو، حتی تفضل العين واختاها و حتی یکونو لیومو لیومه سیدان خوب فیا اجبا من دائلن انت سیفهو اما یتقی من شفرت ای ما تغلده یه قداری حقور خودمون اینجا حالا یا میشه بگی شیطنت کرده یا به قول خودمون بالاتر خواست سیف و رو ببره میدونید که سیف و گفتیم مرکز به قول خودمون حکومتش تو حلب بود سیف و خلیفه اصلی مسلمین نبود بلکه از طرف عباسیین که در بغداد خلافت داشتند او در شام خلیفه گذاشته بود و بود یعنی زیر دست بود سیف الدوله در واقع کارگزار دربار خلافت بود اما قسمت حلب قسمت شام که سوریه است دست سیف بود گرفته چی شد؟ یعنی مرکز خلافت تو بغداد بود سیف و در شام تحت امر این خلیفه بغداد حالا اینجا میگه فیا عجبند ای شگفتی فیا عجبان من دائلن دائل یعنی صاحب دولت یعنی خلیفه یعنی دولتدار میگه این شگفتی از این دولتدار بدداد از خلیفه انت سیفهو دولتداری که تو صیف او هستی شمشیر او هستی یعنی تو کارگزاریشی اسم صف و همچون صیف دوله بوده یا انت صیف او اینجا میگه آدم تعجب میکنه از این خلیفه ای که تو کارگزاریشی چرا میگه اما یدتقی شفرته ما تقلده دار این اومده تو رو با عنوان شمشیر خودش گرفته اما یدتقی آیا نمی ترسه از شفره یعنی تیغه لبه شمشیر اون دم نمی از از دودم این شمشیری که قلاده خودش کرده به کمر بسته مم. یعنی این شمشیری که بسته به کمرش نمی که این دودمش خلاصه ترتیب رو بده یا آدم تعجب میکنه از این خلیفه این خلیفه اومده شمشیر رو کرده بگه که سیف و هست شمشیر خودش کرده نمیترسه یه روزی این دودم شمشیر که برداشته خلاده کرده برای خودش به گردن انداخته این خودش رو بگیره خیلی حرف چیزی زده ها. یعنی آقای سیف و تو در این حد نیستی که زیر دست خلیفه باشی تعجب خلیفه آدم گنده ای مثل تو رو در کنار خودش نگه داشتی. نمی نمیترسه از اینکه یه روزی تو به خودمون او رو هم سرنگون کنی و جاش می یعنی ای سیفاالدوله شگفتی است تعجب است از غلیفه ای که تو شمشیر او هستی آیا دو این شمشیری که به دوش گرفته و به خود افکنده اونو به حراس نمیندازه نمیترسه از این دو دم و دو تیغهی این شمشیر به ای تو خودت خیلی بالاتری یعنی خلیفه بغداد اومده تو رو گذاشته تو این حلب تو دمتریوس و نمی دونم روم و رو نمیدونم رو ما همه در هم می تو شدی شمشیر او که با تو همه رو در هم می تعجبه که نمیتررس از اینکه یک روزی این دوتا دم این دوتا تیغه شمشیر یقه خودش رو روگیره. پس دائل یعنی صاحب دولت دولتدار مثل مثلا تامر یعنی صاحب تمر خورمادار لابن یعنی صاحب لبن شیردار دار ش خوب اینم مال این عجب بیتی گفت گفت شگفت تا از این آقای خلیفه که تو رو به عنوان شمشیر خودش که قرار داده با تو روم و غیره رو در هم میکوبه اما یتقیی آیا نمیترسه منشفرته ای ما تقلدار از دودم این چیزی که بر دوش خود گرفته قلاده کرده بر خودش آه منظ ص است این شمشیری که به عنوان شمشیر خودش گرفته ازش نمی تفیه که یک روزی ممکن است بگید یقه خودششون. حالا توی این بیت بعدی همین رو دزیر میید. میگه و معنی جعلل سید بازهو تیه دو زر و فیما تید اینو ضررب مثلا به کار میبرهید. میگه زمانیه عل زرقوم زرغام یعنی شیر کسی که شیر رو برای شکار به عنوان باز شکاری خودش میگیره چون اونهایی که شکار الان هم الانم عرب های حاشیه خلیج فارس و اینها بازهایی دارن که میبرن باهاش با سلاح تخریب می‌کنن شکار میگه اگه کسی بیاد شیر رو تربیت کنه که این شیر براش شکار کنه. من چه میخواد بگم؟ تو الان مثل یه شیری هستی که این خلیفه اومده تو رو به عنوان باز شکاری خودش گرفته. شیر رو اگر انسان باز شکاری خودش بکنه، هیچ بعید نیستش که یک باری خلاصه به و خود او رو هم شکار کنه. و من علی الزرقا هر کسی که قرار میده از زرقام مفعول اول یچعرز بازهو مفعول دوم، یعنی مثل بازیه کسی که شیر را مثل باز شکاری خودش قرار میده برای سید برای شکار کردن این یچعن فرنشت شد، شرط اینه تسیده و زرقام سید میکند اون شخص را این شیر دیمات اصلا در بین تمام شکارهایی که شکار میکنه چطور میره دیمتریوس رو شکار میکنه میره کنستانتینو رو میکشه ها همونطور که اونها ای شیره یا میچرخه طبق چیزش خلیفه رو هم میده یعنی تو بالاتر از این حرفا هستی تحجبه که خلیفه تو رو تحمل کرده تو رو به عنوان زیر دست خودش گرفته و شمشیر خودش قرار داده نمیترسه از تو که تو شمشیرش پا بعد گفته زیرا کسی که میاد شیر رو به عنوان باز شکاری برای شکار خودش قرار میده این شیر خود اون شخص رو شکار خواهد کرد تسیده بود از ذرخان فیما تسیدا در بین آنچه که شکار میکنه خلاصه این رو هم یک روزی بگید شکار خواهد کرد و در واقع میخواد بگه تو به عنوان زیر دست خلیفه به عنوان استاندار به عنوان عامل اصلا در شهرت نیست خلیفه انگوش کچیکه تو هم نیست چطور خلیفه نمیترسه که کسی مثل تو رو پیش خودش نگه داشته مثل کسی میمونه که شیر رو به با عنوان باز شکاری خودش گرفته تربیت کرده میفرسته برای شکار میکنه بله دو باسته با شکار میکنه ولی خلاصه آخرش خود او رو هم در بین شکارهایی که می کند شکار خواهد کرد زرقان شیر شیر درنده تزیده یعنی شکار کرد هر که شیر را باز شکاری برای شکار کردن خودش قرار بده اون شیر در خلال آنچه که سید میکنه روزی او رو هم شکار خواهد این شیر از امثال سایر است یعنی جوریه که ضرب بکار بکنه خلاصه میگن با دوم شیر بازی کنی یه روزی خلاصه این دوم شیر که بازی کردی باش برمیگرده میگرد شیره و تو رو میخوره آه با دوم شیر میگن بازی نکنی یعنی این خریبه با دوم شیر برو بازی میکنه که تو رو نگه داشته خب این بیتم که در واقع بیت قبل رو معناش رو آورد تمام شد این مبحثی که میشون داشت عنوان میکرد و من یجعن زرقا آمده سیده بازهو تسیدهو فی ما خب خوب تا همین بمونه چون مبحثش به گونه ایست که قصد دارم یه نظر به دیتاش حرف بزنم یه مطلبی را هم عرض کنم خوب گوش کنید اینکه هفته آینده به دلیل اینکه من متاسفانه جلسه دارم این ساعت نمیتونم در خدمت شما باشم اگر براتون مقدور هست ساعت چهار بعد از ظهر که از غزبین برگشتم کلاس رو براتون دایر میکنم درست شد؟ پس هفته آینده این الله ساعت چهار بعد از ظهر کلاسمون رو داری معلوم شد؟ پس اگر حالا گروه دارید یا دوستانی ازتون هستند که ممکن است فراموش بکنن، کلاس هفته آینده من ساعت چهار بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. دوام میکنم همتون صحیح و سالم و کاملا موفق باشید، خداوند به همتون عنایت خاص داشته باشه، تا انشالله هفته آینده ساعت چهار بعد از ظهر همه تونو به خدای سبحان بس برن. سعی کنید استرس و استراب هیچ نداشته باشید به خداوند توکل داشته باشید انشالله همه چیز خوب خواهد شد و ما بتونیم به شکل حضوری در خدمت شما باش. موفق و معید باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکات